آن کاسگری که کاسه سرها کرد در کاسگری سفاقت خود پیدا کرد برخان بوجود ما نگون کاسه نهاد وان کاسه سر نگون پر از سودا کرد. از واقعی تو را خبر خواهم کرد وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد با عشق تو در خاک گروه خواهم شد با مهرت و سرز خاک برخواهم کرد. دل چراغی است که نور از رخ دل برگیرد ور به میرد زغمش زندگی از سر گیرد صفت شمع به پروانه دلی باید گفت که این حدیث است که با سوختگان در گیرد. جانم به فدای آنکه او اهل بابد سر در قدمش اگر نه هم سهل خواهی که به دانی به یقین دوزخ را دوزخ به جهان صحبت نا اهل بابد